من فتانا هستم و شما به قسمت سوم از فصل اول به برای خواب های بنفش رادیوژده بنفش گوش می کنید. بخش سوم معماه زیادی وجود دارد. جان به اطراف اتاق نگاه کرد آنجا کتابخانه کوچکی بود با میزی بزرگ در مرکز اتاق روی میز کتابی باز بود همراه عینک قدیمی با قاب گرد که نور شم را از خود عبور میداد جارد جلو رفت در حالی که به کتاب های داخل قفسته ها نگاه میکرد با نور ضعیف شم هر بار فقط نام یک کتاب را میدید اسم همه کتاب ها عجیب بود تاریخ کوتوله‌های اسکاتلندی خلاصه دیدارهای های جنهای خاندار از سراسر دنیا و آناتومی حشرات و بقیه موجودات پرنده مجموعه ای از بطری های پر از تمشک، گیاهان خشک و سنگ های لب نیز چیده شده بودند. نزدیک بطری پر از سنگ، یک نقاشی آبرنگ دخترک کوچک و مردی را در حال بازی روی چمنها نشان می‌داد. چشمهای جاد به یادداشتی روی کتاب باز افتاد. کتاب و یادداشت بالای نازک از قبار پوشیده شده بودند. کاغذ در اثر گذشت زمان زرد شده بود، اما شعر کوتاه عجیبی با دست روی آن نوشته شده بود. در پیکره مردی خواهی یافت اصرار مرا برای انسانها اگر راست و دروغ یکی باشند زود باشد که دریابی شهرت مرا بالا و بالا و باز هم بالاتر موفق باشیه دوست بالا. او کاغذ را برداشت و آن را با دقت خواند. انگار در اینجا پیامی برایش گذاشته بودند اما چه کسی این را نوشته بود؟ منظور شر چه بود؟ صدای فریادی از طبقه پایین شنیده شد ملوری، سیمون، شما اینجا چیکار کار میکنید؟ جارد نالهی کرد چرا مامان باید الان از فروشگاه برگردد؟ جارج صدای ملوری را شنید که گفت سنجابی توی دیوار بود. مامان مادرش حرفش را قطع کرد و پرسید جارد کجاست؟ برادر و خواهرش چیزی نگفتند. اون بر رو بیارید پایین اگه برادرتون توی اون باشه جار دبید اما وقتی رسید که جعبه توی دیوار ناپدید شد شمعش از حرکت ناگهانی او پت پتی کرد اما خاموش نشد سیمون با صدای ضعیفی گفت دیدید؟ بالابر باید خالی به آنجا رسیده باشد خب پس اون کجاست؟ ملوری گفت نمیدونم لابو توی رختخوابش خوابیده مامان مادرش نفس عمیقی کشید و گفت: اوه، خب، پس شما دو هم برین و همین الان بخوابید. همین حالا. جار به صدای قدمهایشان که دور میشد گوش کرد. آنها باید قبل از برگشتن و پایین آوردن او مدتی منتظر می‌شدند. البته کاش بفهمند که بالا بر او را به طور کامل به طبقه بالا نرسانده است. وقتی او را در رخت خوابش حتما تعجب می چطور باید می فهمیدن که او در اتاقی بدون در دام افتاده است؟ صدایی از پشت سرش آمد. جارد چرخید صدا از طرف میز بود. وقتی چراغ دستسازش را بالا بردید که چیزی روی قبار نیز یا داشتی نوشته است. چیزی که قبلا آنجا نبوده تیک تاک مواظب پشت سرت باش جارد از جا پرید. شم اش به یک طرف کچ شد و شم مذاب شل را خاموش کرد. او در تاریکی ایستاد آنقدر ترسیده بود که نمیتوانست جایش تکان بخورد چیزی توی این اتاق بود چیزی که میتوانست بنویسد. آهسته به طرف حفره خالی بالا برد اقب رفت و لبش را گاز گرفت تا فریاد نزنند. صدای کیسه های خرید را از طبقه پایین شنید که مادرش داشت خالی میکرد او در تاریکی زمزمه کرد چی اوجاز؟ تو چی هستی؟ تنها پاسخش سکوت بود جارد گفت من میدونم شما اونجا هستی اما پاسخی نیامد و هیچ صدای خشخشی شنیده نشد بعد صدای پاهای مادرش رو در راه پله و صدای دری را شنید و بعد هم هیچ چیز هیچ چیز هیچ غیر از سکوتی چنان سنگین و ترسناک که داشت خفهش میکرد احساس میکرد اگر با صدای بلند نفس بکشد حضورش آشکار میشود و هر لحظه ممکن بود آن چیز به او حمله کنه صدای جیر از توی دیوار شنیده شد جار چنان ترسید که بطری را رها کرد اما بعد متوجه شد که صدای بالابر است در تاریکی پاورچید به طرف شد. خواهرش آهسته از آن پایین گفت: "سوار خودش یاد خودت را توی جعبه فلزی جاده حالا چنار آرامش خاطری یافته بود که متوجه نشد که به آشپزخانه رسیده. به محض اینکه پیاده شد، شروع کرد به حرف زدن. یک کتابخونه اونجا بود، کتابخونی سری با کتابای عجیب و غریب. یه چیزی هم اونجا بود که یاد داشتی روی گرد و خاک نوشت. سیمون گفت: جار مامان صدای ما رو میشنوه جارد تکه کاغذی را که شعر رویش نوشته شده بود به آنها نشان داد و گفت اینو ببینید یه جور راهنمایی توی اون هست ملوری پرسید با چشای خودت هم چیزی دیدی جارد با هیجان پاسخ داد پیام روی گرد و خاک رو دیدم میگفت مراقب پشت سرت باش ملوری سر تکان داد و گفت این پیام شاید مدت ها پیش نوشته شده باشه چار با اصرار گفت: "نه خیل. من قبلا میزور دیده بودم. چیزی روش نوشته نشده بود." ملوری گفت: "یواش. ملوری، من خودم دیدم." ملوری با مش پیراهن او را گرفت و گفت: "ساکت باش." صدای گفت: "ملوری، برادرتو ول کن." مادرشان بالای راه پله باریک آشپزخانه ایستاده بود و از حالت صورتش معلوم بود که اصلا خوشحال نیست. اضافه کرد: فکر میکردم قبلا مشکل حل شده. اگر یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه شما رو بیرون رخت خوابتون ببینم، توی اتاق زندانیتون میکنم ملوری پیراهن جال را بل کرد، اما با هرس نگاهش کرد. سیمون پرسید: اگه بخوایم بریم توالت چی؟ مادرشان گفت: الان فقط برید به وقتی به طبقه بالا رسیدند جارد و سیمون به اتاق خودشان رفتند. جارد ملحفه را روی صورتش کشید و چشمهایش را محکم بست. سیمون آهسته گفت من حرفت رو باور میکنم کنم. درباره یادداشت و چیزای دیگه اما جارد پاسخی نداد. از اینکه به رخت برگشته بود خوشحال بود. فکر میکرد میتواند یک هفته تمام همانجا بماند. شما به قسمت سوم از فصل اول قصه هایی برای خواب بنفش رادیو 18 بنفش گوش دادید